امام اهل ایمان سو از امام اهل ایمان گل موسبن جفر به جسم آلمی جان دلم مجنونه همش میخونه Kusho madi a sultan, de la madjune, hamash michune. Kusho madi a sultan, tu as sinoure iman. iman. مال گل موسف نجفر به جسم آلمی جان دلم مجنونه همش میخونه خوش آمدی ای سلطان دلم مجنونه همش میخونه دلم مجنونه همش میخونه خوش آمدی یه بار دیگه تو از سینوره قران امام اهل ایمان تو از سینوره امام گله مصعب جعفر ده جعفر به جسم عالم جان دلا مجنونه همش میخونه خوش اومدی ای سلطان دلا مجنونه همش میخونه خوش اومدی ای سلطان حقیقت رحمت شکوه عزت حقیقت رحمت شکوه عزت بهار رحمت تمام اسمت جمال اسمت پیام اسمت ایال به کلامت ایال به وجودت ایام به شهودت ایام به قیامو ایال به قعودت تو ای رحمان و تو ای بخشنده دلم از عشق شده آkende سلام آلرت تو ای وجه جانان جمال هی منان خوش اومدی ای سلطان تو هستی نور قران امام اهل ایمان نور بران امام اهل ایمان گل موسی بن جعفر به جسم عالم جان تو هستی نور قرآن تازه شروع کردیم من نگان امام اهل ایمان گل موسی بن جفر عالمی جان دلم مجنونه همش میخونه حقیقت رحمت شکوه عزت بهار لطفو اهاوو رحمت تمام اسمت كلام اسمت پیام اسمت عیان به كلامت عیان به وجودت ای به شهود ایال به قیامت ایال به قدرت تمامی خلق به قدر و جلالت، فقیر کویت دل هر عاشق اسیر رویت، از سلطان اول حسن هیئت بیت زهرا سلام الله